در روایت هست، اگر مردی نسبت به ایال خودش و ایالات خودش سخت بگیره، خدا بر او سخت میگیره این حساب دو دو تا شرط هست در روایت داره که حضرت برمود اگر مردی بر همسر و پرزندانش راحت بگیره، خدا در دنیا و آخرت بر او راحت مگیره هم رو سخت نمیگذره بشه بعضی را سوال میکنن خیلی سختی و فشار زیاده یه مشکل رو حل میکنم حل نشوده مشکل بعدی میاد بعد به مردم و زیدستان خصوصا زن سخت نگیرید و به اونا با رفاقت و مدارا برخورد کرد